میخور که زدل کسرت و غلت ببرد و اندیشه هفتاد و دو ملت ببرد پرهیز مکن ده کیمیایی که از آن یک جرعه خوری هزار علت ببرد به نام خدا با عز سلام خانم خانمها و آقایان جلسه قبلمون در مورد لای محافظ و راه های ارتباط صحبت کردیم و دوستان رفتن که لایه محافظ بگیرند و وارد فاز جدیدی از لحاظ کسب تجربه در کار با شبکه شعور کیانی یا این هوشمندی که صحبتش رو کردیم داشته باشند دوستانی که متوجه اجرای لایه محافظشون شدند دستشون رو بلند کنند ببینیم که خب یکی دو تا گزارش رو بگیریم خیلی سریع که لای محافظ چه شکلی بود چه جوری بود چه جوری اجرا شد اگر موافق هستیم خب از این بحث صحبت بکنیم من همون لحظه اون ساعتی که به قرار بود خیلی راحت درس کشیدم چشامو بستم هیچ... به هیچ چیز فکر نمی کردم بله. دقیق آن من تمام سلولای بدن من حرکت موجی انجام می دادم به صورت انواج سینوسی سی. بله. من این حس رو نزدیک هفتش دقیقه داشتم بعد از اون هر شب که به سلولا متصل می شم این اتفاق برای من می افته. حالا در تمام بدن من نباشه در جای مختلف. یعنی اون حفاظ تکرار میشه. شده بله دقیقا این حس رو بله. خیلی منم پوست دارتون محبت بک من همون زمانی که برای لای محافظ تنین کرده بودم اون زمان حالت لرزش داشت بدنم بعد یه نوری رو می‌بینم میدیدم که دور بدنم قشنگ داشت تشکیل میشد یه حالت تشکیل بود که میترخی تا بدنم ما همه رو خب ببینید لای محافظ در واقع به صورتهای مختلف میشه مشاهلا در با چند تا مورد دیگرم بشنویم بعد نیست یا اینکه مثلا از سر تا پا مثل اینکه یک گونی رو بکشن یک کیسه رو بکشن الا از جنس نور رنگ یک چیزی مثل بخار مثل مه آب پایین به بالا آب بالا به پایین یا اینکه مثل حالت بانتیچی باشه یا ما رو در یه نور فرو کنن یا یک رنگی یا یک چیزی که ببینیم ما رو احاطه کرد از درون به بیرون از بیرون به درون و خلاصه کلام هر کسی مثل اثر انگشت خودشه هیچ دو تا موردی هم مثل هم دیگه نیستن میخواد یک مسئله مورد دیگه گوش بدیم که چطوری بوده گرمایی ما رو گرفت یک فضایی ما رو گرفت خب بسیار خوب بفرمایید باشه من همون شب هیچ احساس نکردم ولی شب بعدش وقتی خوابیدم مثل هم یه سه چهار ساعت یه حالت خواب و بیداری همین انرژی کفی دستم کل بدنمو فرا گرفته بود نه ویدا می‌شدن سیستمم بله. که دارن لاین محافظ میگیرم بله یه مطلبی دیگه این که اون سا... از اون ساعت به بعد از اون ساعت به بعد ما یه دفعه متوجه میشیم که یک چیزی رو رو متوجه میشیم یعنی نه اون ساعت تو از اون ساعت به بعد مثلا دو روز بعد سه روز بعد چهار روز بعد پنج روز بعد چند فرد داریم اینطوری که بعداً متوجه شدن که یه چیزی اونها رو دربر گرفته داریم کسی شما بله خب بنابراین اون لحظه رو داریم در اون لحظه این دوستان در دو اون لحظه متوجه شدن اما یه تعدادی از دوستان هم اونه یعنی که چند وقت بعدش یه دفعه متوجه میشن که یه حفاظی رو متوجه شدن یا بهشون نشون دادن این هم داریم حالا دوستان سوال نکنن که ما بعداً دیدیم که این هست و اینا بدون در حصورت این قضیه هست خب موضوع دیگه دوستانی که یکی دو تا گذارش دیگه گوش بدیم یا نه در همین مورد لای محافظ روشن کنید زمانی که خوابیدم همون شب اول هیچی احساس نکردم ولی دو شب بعدش دقیقی دو شب بعدش همون ساعت یازده که قرارمون بود بدنم هی سرد میشد هی گرم میشد اصلا حالت لرز داشتم فقط همین احساسو داشتم. ولی چیزی تو می می‌شد چیزی در بر گرفته. نه چیزی، احساس فقط همین سرد می‌شدم، گرم شدم حالت لرزش. همه همه بسیار خوب. خب، دوستانی که بعد از این دریافت لای موافقت تونستند تجارب عملی کسب بکنند و به هر حال ایجاد ارتباط بکنن، دستشون رو بلند کنن. ببینیم که چند نفر کار کردن، چند نفر اصلا کار نکردن. اونا رو آمار بگیریم بگم که بهتر <تصفيق> یعنی بقیه کار کردن منظور که الان دستشون رو بلند نکردم بقیه کار کردن <تصفيق> یه بار دیگه کسانی که اصلا کار نکردن دستشون بلند کنند. ببینید کار کردن منظورم با دیگرانه با دیگران کسانی که کار کردن دستشون رو بلند کنند. خب حالا اجازه اونایی که کار کردن نتیجه گرفتن دستشون رو بلند کنند. خب حالا این دوستانه که نتیجه گرفتن چند گزارش گوش بدیم ببینیم که چطوری نتیجه گرفتن جنبندی داشته باشیم و بعد حالا از این جنبندیمون نتیجه میخوام بگیریم و بعدم هم تفسیرها و تعبیرها و چیزهایی هست که گوش بدیم میکروفونو رو این هم بدیم این طرف خب کدومه گرد دوستان خب بدیم اونجا این رو خدمت اون دوستان عزیز ببخشید دوستان به گزارش ها توجه بکنن. خوب دقیق بفرمایید تجربه که ایشون میخواد براتون عنوان بکنن به دردتون میخوره ترجم می‌کنید خصوصا اونایی که اصلا فعالیت نکردن این تجارب به دردشون میخوره چون ادهی هستن که نشستن تا اول دیگران انجام بدن بعدا اینها سر فرصت بیان به پیوندن این گزارش ها رو دقت کنید بفرمایید عصوم خدمتتون که من هر موقع خودم ارتباط برقرار میکنم تنهایی احساس ناتنگی شدیدی میکنم بله بعد تا زمانی که لایه محافظ نگرفته بودم سعی کردم با کسی کار نکنم بعدا خب اون که بعدن که لایه محافظ فکر کردم که گرفتم احساس نکردم با یک بیمار سرطانی ارتباط برقرار کردم حالشون هر دغی که ارتباط برقرار میکردم بدتر میشد تا تو سه روز و خوشبختانه امروز شدیدم که حالش روبه به ولی در اولش اثر بسیار بدی رومن گذاشته که احساس می‌کنم که لایه محافظ نگرفتم بسیار روحیم رو خراب کرده و وضعیت روان رو بسیار بد کرده بله از کنم خدمتتون که ما توضیح دادیم چه شما متوجه اون بشید چه نشید ربطی به انجام کاری که می‌کنید نداره و حالا اگه متوجه نشدین در یه فرصتی ما دوباره وقتی اون مشکلات قفل ذهنی افصوردگینیم در این حرفا طرف شد دوباره میتونیم تکرار بکنیم و شما اونم متوجه بشید اما چه شده باشید چه نشده باشید کار انجام میشه کمانگه الان گزارشتون مثبت. منطقه ها شما این از نقطه نظر که من رویم خیلی خیلی خیلی تذیب شده شما بی‌ذاری رویتون تضیف شده. بذارین که فقط اون متوجه نشدی؟ هر موقع که ارتباط برقرار می‌کردم همون نفس تنگی که خودم تنهایی ارتباط برقرار می‌گذادم اینا بهم حاصل میشه و تمرکزی که کردم بعد از اطمینان ارتباط احساس می‌کردم حالا بیشتر بله. باشه. خب ما این ها رو برای این چیزا می‌خوایم. نفس تنگیشون چیه؟ خب بیرونیزی‌شون هر بار ارتباط برقرار می‌کنن حالت نفس‌نگی میاد رو تا اون جایی که کارش چی بشه انجام بشه خب این دلیلی بر اینه که شما رویتون به بازی نیست یعنی اگر به اصول مراجعه میکردید میدیدید که این مسئله است که شما دارید نفس تنگی رو دارید و باید اینو بیاره رو و خلاصه اینقدر کار بکنه تا در واقع حل و فصل بشه خب اینه که میگم این گزارشات ارزشمنده به این دلیل چون ممکنه غیر از ایشون افراد دیگر باشن که همین مسئله رو در واقع دارا باشم. میشنید ته کلاس میشنید یا نه؟ اگه نمیشنید با میکروفون، میکروفون من چند مدت پیش زانو درد خیلی شدیدی داشتم. یکی از معرفین من که الان اینجا تشریف دارن، ایشون من مداوا کردن. اصلا به طور کل زانو درد و این گردنم اصلا به طور کل از بین رفت. تا اینکه من اون روز که شما فرمودین که دیگه از این به بعد میتونید فرادرمانی رو شروع کنید، من همین فرادرمانی رو برای همسرم انجام دادم بعد از فردای اون روز من دوباره همون زان و خیلی شدیدی رو گرفتم به طوری که دوباره باز به همین خانم که الان تشریف دارن من بهشون گفتم که من اینجوری شدم اصلا خیلی زان و درد شدید نمیتونم یه قدمی را برم ایشون دوباره منو درمان کردن الان نسبتا بهترم ولی همسرمون خیلی بهتره خب اما... همسر مهمتره نبینم <تصفيق> بینیم <تصفيق> اینجا فعلا یک به خب یک گل زدین شما فعلا من خدمتون توضیح بدم یه مطلب ببینید بازم ارزش سوالات رو دقیق کنید بینید الان برای یه ادهی هست افراد وقتی که بیرون تحت مداوا قرار میگیرند یک مسئله است وقتی به عنوان فرادرمانگر تحت اسکن قرار میگیرند مسئله دیگه است توجه میکنید این اجازه بدین, اجازه بدین, اجازه بدین اینجا علت چیزه شما وقتی یک بیمانی سرپایی چیز میشه خودتون میدید درمان میکنید یه مسئله داره ولی وقتی این فرد خودش میخواد فرا درمانگر بشه یه جوری خاصتری در واقع با ذره بین با یه اسکن دقیق تری ممکن ممکنه زیر ذره بین قرار بگیره بیاد رو سابقه بیاد رو حالا یه بار ورسی میشه این دلیل نمیشه که شما بگید تو ما عامه، افرادی که درمان شدن بیرون میان اینجا میشینن یک بار دیگم یک بار دیگم اون مسالهشون زیر ذره عبور میکنه در اسکن رد میشه که انرژی دادم دادم انرژی نه اولا ما اصلا انرژی بی انرژی اگه انرژی داشتیم خودمون استفاده میکردیم اینجا داریم با هوشمندی کار میکنیم انرژی ما ندادیم به کسی بدیم ما اونو در معرض هوشمندی قرار میدیم هوش جمعی خب داریم با هوش جمعی کار میکنیم و اون رو در معرض هوشمندی قرار دادیم خودمون در معرض هوشمندی قرار گرفتیم انرژی ندادیم خب در واقع الان میگیم چه ببندیم خب ما انرژی ندادیم که این هوشمندیه نیاز انرژی خودش هوشمندی میخواد یعنی چی باید سوارش باشه بیاد این کارو انجام بده خلاصه بنابر این توی این مسئله در این رابطه خب اسکن رو انجام میده مساله رو برطرف میکنه فرق نمیکنه شما چه قبلا تحت درمان قرار داشتید چه نداشتید اینجا یک بار مرور خودشو میکنه درست شد یا نه این از این مسئله جانم جان من یه تجربه در بفرمایید یک فردی بود که یه مشکلی تو پاشت بالای بالا این <تصفيق> خرابه این خدمت شما دردی بود مشکلی داشت از دوران بچهگی توی ساق پای چپش که من ارتباط بهش دادم ارتباط گرفت باشه و با که بعد بدون این اصلا اطلاع داشته باشه مدعی بود که یه حالت کانال ایجاد شده توی پاش و یه جریانی رو در رفت آمد احساس کرده توی پاش و بعدش خب برای چند لحظه دردش خیلی شدید بود و بعد میگفت خیلی تخفیف پیدا کرد این دردی بود که مثلا سالها بود همراهش بود ولی یه مورد دیگه داشتم جسی کسایی بود که خیلی به این سیستم اعتقادی نداره و اینا نمیدونم فرد مقاومت که چی هیچ جوابی نگرفتم ازش ولی بعد از این کار دومی که داشتم خودم خیلی سنگین شدم و خیلی یه حال خیلی بدی داشتم که تا الانم ادامه پیدا کرده خب جزبتونه که به دقیق انشاءالله مطالعه کردیم در جزبتونم هست وقت شما روی کسی کار میکنی رو خودتون کار میشه. درسته یعنی اینو فراموش. اینو فراموش نکنیم که در واقع وقتی ما رو کسی کار میکنیم رو خودمونم کار میشین قانونه خوب نه این حلقه, حلقه های دیگه هم همینطور هست حالقایی که میتونیم برای دیگری کار بکنیم بعضی حلقه هست سیده از برای خودمونه مثلا الان لای محافظ فقط برای خودمونه که بیرون کار میکنه لای محافظ نداره لای محافظ نمیخواد این لای محافظ فقط برای خودمونه و شما سوگندنامه مکتوب کردید در قبال سوگندنامه لای محافظ و اتصال و هرچی لازم بود چیکار کردیم گرفتیم بنابراین توی این موضوع به اصطلاح درمانی شما وقتی برای کسی ارتباط برقرار می‌کنید برای خودتون ارتباط برقرار میشه و اسکن شما ادامه پیدا می‌کنه این یکی دو هفته تا اسکناتون تکمیل میشه همینطوریه بعد از این دوره که تمام میشه دیگه این دو نیسون تقریبا اسکنات تمام میشه دیگه خیلی کم پیش میاد ارتباط برقرار کنید حالا خودتونم اسکن به نیاز دارید ولی معمولا این دو سه هفته ابتدایی معمولا بازار اسکن داغه یعنی شما نیاز دارید اونم انجام میشه چیانم؟ بفرمایید بله میکروفون به الان حدود 20 ساله که من مدیتیشن می کنم یعنی چیزه یه مانترا دارم بعد دیگه دیگه تربان الان مثل عادت شده برمین ملکه زین شده بله یعنی الان من باید بیس نیم ساعت صبح نیم ساعت بعد از ظهر. دیگه این دیگه موتهاد به این مسئله هستیم و خب اینم دیگه سمان اول به ما گفتن که هدف از این که رسیدن به آگاهی خالصه یعنی نهایتاً همون ها مد نظر ما هستش و در واقع این یک نوع ارتباطه بعد خب من دیگه تو این هفته هیچ شما چون میپرسیدین از من که چه تجربه داشت من هیچ حسی نداشتم تو اون افرادی بودم که حسی نداشتم اون وقت حالا این هفتم تو خونه یکی دو بار چشم رو بستم ولی گفتم خب این کار رو من با تمرین مدیتیشن هم انجام میدم یعنی دیگه کاری انجام ندادم گفتم خب من که مدیتیشن کنم. و در واقع این خودش نوعی ارتباطه دستتون درد نکنه؟ بله الان اجازه بدین کنم. ببینید. خب اگه اینجور باشه هر کسی که مدیتیشن میکنه خب دیگه مدیتیشن میکنه دیگه به اومدن این چه نیازی داره شما 20 ساله دارید مدیتیشن میکنید درسته؟ مشکل چند نفر نشده بود اینجوری حل کنید؟ که الان این دوستان هیچ مدیتیشن هم نکردن پای طاهری میبخشید ولی بر من موثر بوده یعنی روحم روشنبیلی... بیبی من موشنبیلی... که نگفتم موثر نبوده شما اگر اتکا به 20 سال مدیتیشنتون داشتین دیگه اینجا چرا زحمت کشیدین تشبه بودین من اینو میخوام بگم چرا وقت خودتون رو طلب کردین دقیق بکنین ببینید الان ما جرایی که هست اولا این قضیه میدیتشن نیست ما منترا نداریم به همین علت به همین علت که ملکه ذهن میشه منترا نداریم و بعد شما دوره حق میخواد گسترده ارتباط گستردگی پیدا بکنید این همین قفلتون میکنه رو زمین همین همین مسئله قفلتون میکنه زنم ما اونجا باید چقدر کار بکنیم با شما دازه اینو پاکش کنیم خب باید کار کنیم این مسئله رو در واقع ذهن شما رو الان ببینید که یه نفر که هیچ کاری نکرده 0 کیلومتر راحت تا یه نفر که 20 سال اومده کار کرده و بعد از همه اینا مهمتر اینی که شما می اومدید اینو با اون تطبیق نمیدادید اینو جدا انجام میدادید ببینید به چی میرسید خب حالا برای خودتون انجام ندیدین برای دیگران چی برای دیگران همین که این دوستان الان دست بلند کردن آقای طاهری من انجام دادم برای دخترم انجام دادم موثر واقع شد موثر واقع شد احسان حالا یک مورد هم کافی نیست میگن با یک گل بهار نمیشه با یک مورد نه تکذیب میشه نه قبول میشه یه 10 هم مورد کار بکنید و من توصیه میکنم که اون ماجرا رو به کنار این ماجرا رو جداگانه تست بکنید بعد مقایسه کنید یعنی یک هفته شو الان باز من نمیخوام قیاس کنم خدا کرده چیز پیش بیاد دوستانی که یکی دو سه هفته انجام بدن اینها معادل 20 سال اون مدیتیشن رو تمام چون طریعا به خیلی از مسائل درسی پیدا میکنن که حالا با هم صحبت میکنیم بنابراین این اینو جداگانه مورد بررسی قرار بدیم یعنی اگه بخواد بگید که این اونه و ما همین سوال پیش میاد که اگر این اونه چرا اونجا انجام نمیشه پس؟ و چرا شما اینجا حضور داریم؟ بنابراین اینو جداگانه انجام بدید حالا ما براتون چیز میکنیم که انشالله تا دورای بالا هم خلاصه اینم بشه یک میکروفون, میکروفون. کنار ببینید ما هیچ وقت میگه آب را گل نکنیم شاید این آب روان میرود که در اون فرو شوید اندوه دلی دست دربیشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب اله ما آب رو گل نکردیم ما نگفتیم که به درد نمیخوره به درد کار ما نمیخوره میدونید؟ یعنی در واقع بیرون کاربورد داره ولی وقتی اینجا بیایم اختلال ایجاد میکنه دو تا چیز مختلفه که میخوایم با هم قاطی شونیم قاطی نمیشه ما نداریم یه چیزی اون داره. خب این جوری میشه؟ خب شما یه درف میگوی بشینین مانترا نگی یه درف میگوی بشینین مانترا بگی یه طرف قفل ذهنی و ملکه ذهنی داری یه جا لازم نیست داشته باشین خب اینا با هم دیگه نمیذاره شما اون نتیجه لازم کار رو بگیرین اما ما باز مداخله نمی کنیم هر کاری دوست داریم بکنیم ولی کار با دیگران رو شما میتونین تجربه بکنید من توصیه اینه که یک راه رو دنبال بکنید یکی رو بریم که قاطی نشین خب زمانی که برای اسکن هست حالا شما برای دوستانتون راهنمایی شو میکنید شروع زمان خب سر یه رأسی زمانی 3 است. اگر ما رو متوجه میشیم رو متوجه بشیم که این اسکن ممکنه در دقیقه نیم ساعت یه ساعت دو ساعت طول بکشه درست شد اگر متوجه نشدیم در دقیقه یه رو 20 دقیقه میتونیم ادامه بدیم و بعد خاتمش بدیم در صورتی که ارتباطمونو متوجه میشیم و میبینیم بیش از زمانی است که ما وقت داریم براش مثلا ما 20 دقیقه وقت داریم ولی اون ارتباط رفت به یه ساعت ارتباط های بیش از یه ساعت داشتیم بیش از یه ساعت خب بیش از یه ساعت یعنی شما متوجه شدین که چقدر زمان مثلا طول کشید. یک, یک ساعت و چل دقیقه ده تا دوازده و نیم. دو ساعت و نیم. دو ساعت دونیم لایه اون طول کشیده آها دو ساعت دونیم. حالا بالاخره اون حالت تموم میشه متوجه میشیم که تموم شده به صورت اگر که احساس ارتباط متوجه میشیم ولی زمانمون کمه سر اون زمانی که لازمه از ارتباط بیان بیرون یعنی به کار و زندگی اون لطمه میخوره قطش میکنیم بیان بیرون این هم از این مسئله جانم جانم بله ابدا ابدا اینطور نیست ببینید الان که ما اینجاستیم اون دفعه هم گفتیم چندصد نفر الان همین زمان با ما در ارتباط هستند در تازه حلقه های مختلف ولی اینها اسامیشون صبح دیشب اینها در یه فرصتی به شبکه داده شده به شبکه اعلام شده و اونها الان دارن ارتباطشون رو دریافت می‌کنن و لازم نیست ما راز ساعات بگیم الان اینو داریم الان اون داریم الان نه نه نه ببینید مفهوم اینه که اینجا الان فرض کنید چند تا اسمو اینجا الان دوستان به من دادن خب این اسامی که همین الان داده شده حالا یه سری هم اسامی صبح بوده که خب دادیم در همین فاصله بخشش رو داده شده ببینید شما فقط نگاهی مندازید تعیید میکنید که در واقع من از اتصال خودم از روزی آسمانی خودم به اینها انفاق کردم این زبان مذهبی چی؟ من از روزی آسمانی خودم به اینها انفاق کردم تایید شد خب این تایید در واقع اونها مستفیز میشن و سر زمانهای خودشون ارتباطشون رو دریاب میکنن به عبارت دیگری ما مثلا فرض کنیم میگیم به خدا سپردیم خب به خدا سپردیم یعنی چی؟ اگر به یکی بگیم به خدا سپردیم یعنی واقعا اونو به خدا سپردیم چه اتفاقی برای اون میفته؟ اگر به یکی بگیم به خدا سپردمت. هیچی؟ اتفاقی میفته؟ تو خیابون کوچه میگیم به خدا سپردمت. اتفاقی میفته؟ اما در حلقه در حلقه باشیم، متصل باشیم این میشه به خدا سپردن. یعنی نمود عملی داره این قضیه که داریم صحبتشو می کنیم. خلاص کلام به این صورت اسامی اون اده به شبکه هوشمندی چی شد؟ این اسامی رفت تو شبکه و اونها میتونن سر زمانهای خودشون ارتباطشون رو چیکار بکنن؟ داشته باشند ارتباطشون رو برقرار کنن این به همین صورت خب چونم؟ بله بله, بله بفرمون میکروفون اگر خدمتتون هست؟ تو تا الان من سردرد خیلی بد دارم یعنی حتی با دارو هم خوب نمیشم شما دو ارتباط سردرد سابقه سردرد نداشتم اصلا نداشتیم به تو کلاس من سردرد میگم تا چند روزم این سردرد همراهی بله. به قدریم بعد کسان خوب نمیشه بله خب حالا جوابشونو چی بدیم یعنی واقعا مسئله کلاسه اگر جوری باشه چرا ایشون اینجوری نیست چرا ایشون اینطوری نیست بله پس. من هی برقرار نمی کنم. حتی لایه محافظم هم متوجه نشد چی شده؟ نشین. اون یه ماجرای دیگه داره. خوب. اون یه مسئله دیگه داره. ولی فعلا شما می کتاب بین تو کلاس سرتون اتون دهت می گیره تا چی دام هست. اینجا به مرض اینکه که در معرض اسکن اینجا قرار می گیرید اینو داره در میاره رو و حتما متعلق به خودتونه یعنی از درونتونه دیگه از بیرون <تصفح> که نمیاد که. اینو <تصفح> قبول دارین؟ برای اینکه این همه آدم که نمیشه بیان تو کلاس بعد هر که دو تا بیمارش به واسطه موهید بیاد رو مگر اسکنی باشه بنابراین شما دیر زود متوجه میشین که این مشکل رو داشتید برطرف میشه منتها اگر اونجوری بهش نگاه بکنید که این از کجا اومد از کجا اومد از کجا اومد هی این طولانی میشه خب شما هنون قبول نکردین که در مرضی یک هوشندی قرار گرفتین لذا میکنن هی تکرار میکنن ه هی تکرار میکنن شما دوباره هفته دیگه هم میاد میگه که من نمیدونم چرا وقتی میام اینجا سرم درد میگیره بابا ما که جلسه اول گفتیم شما در مرض هوشمندی قرار گرفتین شما هنوز اینو قبول نکردین بعضی موقع اونا هم هی تکرارش میکنن اونا یعنی منظورمون این هوشمندیه هی تکرارش میکنه میگه خب بذار یه دیگه تکرار کنیم ببینیم که این درسو ایشون گرفتن یا نه امیدوارم که الان قبول بکنید شما در مرض هوشمندی هستین این آورده رو و حالا کاری که ما کردیم اینه که ما تسلیمیم یعنی در اختیاریم تا اون بتونه اینو چیکار کنه از ما بگیره حالا اینشالله ببینیم در ادامه قضیه چطوری میشه ببخشید بسطور بفرمون ببخشید محسن باید کسید که یک طرف بهشون ارتباط میدیم 24 ساعتی میشه اعلام کرد درشون اینه که از رایی اصولا 24 ساعت مسئلش که ارتباط برقرار هست. ولی ما با پیمان و قرار کار بکنیم خیلی بهتره. خب یعنی ساعتی قراری چیمه تو قرار چون اون 24 ساعته در واقع نمیاد در 24 ساعت اون, اون در واقع نمیدونست جمعه کسی که قبول نداره این قضیه قبول نداره داره. اون میشه یه طرفه اگر دوست دارید در وقت اول کار نکنید ولی در اگه دوست دارید کار بکنید قبول نداره با مدعی نگوید از شور عشق و مستی تا بی خبر بمیرد از درد خودپرستی بزن حالا بدوه حالا حالا بدوه این ور اون و یه روزی خودش دوزارش زارش بیفته که بی خود دونده ای کرده عمرشو به باد داده درست شد در ول اول توصیه من اینه که ولش کنید بذارید به حال خودش باشه اما اگر نه شما اصرار دارید بالاخره عزیز نمیدونم یه نسبتی داره ارتباطی داره و شما بالاخره مسترد براش کار کنید خب میشه یه طرفه چند نفر از دوستان یه طرفه تجربه کردن کار کردن یه طرفه رو چند نفر نتیجه دیدن چند نفر نتیجه کار یه طرفه رو دیدن یعنی دیدن که موثر واقع شد خب بنابراین ما این تجربه و آمار رو داریم که یک طرف هم جواب میده خیلی هم این 24 ساعتی میتونم ارش رو اعلام کنم یا این ساعت خاصی اصلا یه طرف دیگه 24 ساعت, ساعت نداره دیگه شما عشنش رو فقط اعلام میکنید بفرماید بفرماید میکروفون رو بدید اقاب ببخشید من بله بله, بله بفرمایید بفرماید من توی یکی از اتصالاتی که برقرار کردم برای درمان اون فرد یه چیزای خیلی عجیبی به من گفت که من دیگه آخرش فکرم داره میگه هزیون می اول که به من گفتش که اول یواش یواش بیهست شد بدنش بعد گفت دیگه حتی لبام و چشام حس نمی بعد یواش یواش گفت دیگه اصلا یه تیکه گوشه سنگینم بعد گفت دیگه اصلا نیستم بعد, بعد, بعد بعدش گفتش که بعد یه چیزای عجیبتر که گفتیم بوده. من اصلا نمیدونم چه جوری با چه کلماتی بگم چون اصلا نمیدونم چی گفته نفهیدم بله. چی گفت گفت یه زمین که چاله،, چاله داره شیار داره بعد گفت گفت یه کوه گفتش یه کوه سنگینه انگار بخوای بلندش کنی بعد گفت یه تپه است بعد آخرش من دیدم لباش دیگه خوب به هم نمیخوره اصلا شل شده بعد دیگه ترسیدم فکر اصلا هزیون داره میگه و حال الان حال میاره بله. دقتش کرد بله معمولاً این ارتباطا رو برای خواشغرا و ماده اشغرا می‌گه. حالا من چجوشیده اشتباه شده. اون مادرم بود. حالا می‌خوام ببینم چی بوده. بله، ارتباطاتی برقرار میشه که بخشی از این ارتباطات حالا ضمن اینکه اسکن‌هایی رو داره، در واقع ما رو با یک سر و سلوکا و با مفاهیمی آشنا می‌کنه که در دنیای عرفان جایگاهی داره. مثل تجربه محبه شدن فنا و حالا اینه که تجربه جهان یا دنیای بعدیمون که دنیای لامکان هست که در اونجا ما مکان رو احساس نمی‌کنیم یعنی محتاج مکان نیستیم این تجارب یواش یواش ما رو به یک مفاهیم خاص دنیای عرفان هم در واقع نزدیک می‌کنه چون فقط صرفا اسکن چیز نیست و بعضی از این تجاربی که پیش میاد مثل اون که دیگه نیستن، هممثل اون بحث فنا و محم و تجاربه که خدمتون از کردم اینها هم پیش میاد در هاشیه این قضیه. حالا به فراخور مسائلی از شوخی گذشته. ولی بله جایی هیچ گونه نیست یعنی به طور کلی شما باید بدونیم که هیچ اشتباهی رخ نمیده. برای اینکه درون هیچ تششکیص انسانی وجود نداره که بخواد اشتباهی رخ بده. بنابراین خود حوشبندیه که به صلاح دید اون کارهای لازم رو میکنه؟ دنبال میکنه، تعقیب میکنه بنابراین فقط ما کاری رو که میکنیم اینه که از اون روزی آسمانی خودمون اون انفاق و انجام بدیم اون اتصال برقرار بشه بقیهش رحمت عام الهیه که همه میتونن از اون چی باشن؟ برخوردار باشن خب بپ: ببخشید میخوااستم م رسیدم به اوج بیماریتون نموداره که شما کشیدین چقدر زمان میبر یعنی یه هفته دو هفت سه ما چهار ما چقدر ؟ خیلی رفتیم بالا ما کمصللهتر از یه حرف هستیم. خب از کنم خدمتون توضیح دادیم که اینجا وضعیت بحرانی است که بعد از اسکن ممکنه مشکلی شناسایی بشه بیاد به اوجی برسه. و بعد پایش پیدا بکنه بیاد پایین و این حالتش که فرد باش برخورد کردیم اینجا مشکل داشته اما اینجا زمان است که مشکلش از بین رفته خب این زمان میتونه معمولا از ثانیه شروع بشه تا روزهایی تا روزهایی دیگه به ماه و سال و این حرفا معمولا نمیرسه دیگه در حد روز و هفته و این حرفا باید باشه ببخشید من خودم الان ناراحتیم عاد کرده حدود سه ماهی ناراحتیم عاد کرده و اصلاً هم رو به بهبود نرفتم ببینید من فکر نمی کنم که در این رابطه باشه مشکلات دیگه داشتین که حل شده باشه؟ من حسن خوب خوب بودم مامانم که تو این کلاس مادر رو من کار کردن مریضین دوباره عاد کرد کلیت دارم الان سه ماه کلیت درسه دور... یعنی شما کلید رو چجوری خوب شده بود؟ با دارو دیگه با چون کلیت درمان نداره بله کلیت درمان نداره شما با دارو در واقع علایمو چیکار میکنید نگه میدارید علایمو نگه میدارید حالا اینجا میاد چیکار میکنید اینجا میاد نمیذاره که این بازسازی این ای که اصولا اصلا من یه چیز رو بگم خدمتون که ماجرایی که اینجا هست این اوجی که ما داریم به معنای اد نیست مثلا عد نداریم به معنای بازسازیه اینو خوب دقت کن این مطلب خیلی مهمیه. این بازسازی علائم اون درد یا مشکل یا بیماریه کسی فقط بازسازی میکنه از حافظه سلولی نه اینکه اگه قرار باشه که نمیدونم ده سال پیش کسی سرطان داشته حالا دوباره سرطانش بیاره رو نه اصلا اینطوری نیست چون اگه باشه که یه پاجهه روغ میده اون سلول های صدم دیده رو از روی حافظه سلولی شناسایی میکنه علائم رو بازسازی میکنه و شروع میکنه روش کار کردن در اینجا این مشکل حالا من گدشته از این بحث این که شما فرماسیت ما بحث اینجاست که اگر بحث اسکند باشه خود چون شما یه موقع میینه که الان ایشون یک کسی داشته بیمارش اوت میکرده بنده هم میرسم میرسم و یه ارتباط میدم درست شد یا نه ارتباط هم جز اون سی درصد ایست که نمیشه اما بیمارش اوت میکنه چون قرار داشته اوت میکرده بعد ایشون میگه که بله من اومدم ارتباط دادم بیماری اومد رو و از کنم قدمت دیگه هم خوب نشده خب یعنی میدونین چه داری شد بنابراین اینجوری نیست اولا اینجا خود علامت علایم اون مشکل رو از روی حافظ سلولی بازسازی میکنه نه خود درد عد بکنه نه خود بیماری عد بکنه اصلا اینجوری نیست و بعد بیاره رو در حد روز دو هفته و اینها حالا مشخصا شما از کنم خدمتتون اسمتونو برای من بزرد مشخصا یاداوری بکنید من مشخصا برای شما کار بکنم شما گزارششو بدیم تا جلسه دیگه ببینیم که دوش کار میشه نمیشه چطوریه ما از اینجا بفهمیم که مسئله به چه صورتی خب پس دوستان توجه کردن سازی علائم از روی حافظه سلولی بله من یه خانومی رو میشناسم که تو این ارتباطه به زندگی گذشته صحبت کردیم میکنم اثر این مجموعه به تناسخ اعتقادی داریم ما هیچ اعتقادی به تناسخ نداریم و بحث فکر میکنم که اشتباه شنیده باشین که راجب زندگی گذشته زندگی گذشتهی حالا در دوره شده پای راجب صحبت میشه اون چیزی که افراد به عنوان زندگی گذشته تلقی میکنن آلودگی است که دارن ویروس های غیرورگانیک و اونا میان بیرون و ماجرا در واقع تموم میشه اینجوری نیست خب شما حتما یه بار ببینید که آیا این یا نه چیز دیگه شما شنیدی ما به تناسق اعتقادی نداری خب بفرمایید بله اگه میکروفون خدمتونه هست دارن دارن میکروفون یه سری از این حالاتو که حتما بعد دوستان تجربه کردن خب منم تجربه کردم بله از مقطعی میکنم که یا کم شده یا اینکه اصلا وجود نداره این علتشه به من چه من سوالتون رو خوب متوجه نشدم این بعضی این دریافت ها رو تجربه کردن بله اما الان دیگه این وجود نداره شما فرموده بودی اگر این اتفاق افتاد ما باید اعلام کنیم سریعتر اتفاقاتی که افتاده یعنی چی اتفاقاتی که اتصالی که صحبتش هست احساس میکنن وجود نداره الان. ببینید یعنی بحث فیزیکی احساس بکنیم وجود نداره بله، بله، بله، یا بحث بله. بله. آباهی کاراش درسته انج... انجام میشه نه نه ببینید احساس فیزیکی نیست که من هر لحظه ببینم که دورمون حفاظه هست اصلا احساس فیزیکی فقط به ما نشون میدن تمومه دیگه احساس بله. فیزیکی نداره و اونه که من گفتم خدمتی آنجا نوشتیم اون یه آگاهیه یعنی یه جوریه که احساس بکنیم برمون کردم قیچی شدیم اصلا اون نیست توجه میکنیم مالی. و شما هنوز من مطمئنم که تخلیفی تو این رابطه نداریم من مطمئنم بحث اینجاست که الان معمولاً تو این موارد اولیه ما هنوز داریم انجام میدیم اینجوری نشده که مثلا 50 مورد 10 مورد 20 مورد 30 مورد،, مورد موارد عجم قریب انجام داده باشیم که دفعه غروری برمون داشته باشه نمیدونم هنوز در حال تستیم و کسی که تست میکنه معتادانه میاد جلو انوز نمیدونه میشه یا نمیشه خب و برای چند تا مورد انجام دادیم و اینا خرده السیس شد ممکنه یواش یواش غروری برایمون داره که از منو مطمئنم که ان در جمع ما همش این مسائل اتفاق نخواهد افتاد خب موردی هم انجام داد این موردی بود؟ سه تا تجربه داشتم که دو تاش اطلاعات دارم که خوب شده ولی یکیشون رو امروز هرش تماس کرفتم محفظ نشد خب اون دو مورد چی بود؟ چی شد دلات دوستان؟ یکیش که خیلی درد معده بود که به راحتی همون لحظه حل شد مزلش یکی دیگه هم یک درد کمر خیلی قدیمی بود که در واقع داشت به روح دیسک بود که خوشبختانه هم آخرین اطلاعات هم اونه که هیچ کنه دردی رو تجربه نکرده دوست دوست. بله خوب خدا رو شو خیلی عالیه بسیار عالیه خوب جانم بفهم <تصفح> خب قبلا نداشتی؟ در دو هفته اخری خوب این درس اینم خوب گوش بدین اینم درس خوبیه اگر خاطرتون باشه یک بحثی رو داشتیم یا حالا اگر ما با شبکه مشبت ارتباط برقرار کنیم خب که برقرار کردیم شبکه منفی میاد به ما یک کردیت های میده یک اعتبار میده این وزد میپره مداخلاتی میکنه و خلاصه یک رقابتی بینه این دوتا شبکه وجود داره وقتی اون بره این بر میاد این ور هست اون بر میاد و خلاصه الان ما در معرض کردیت و اعتباری قرار گرفتیم. اینو دور بعدم بیشتر روش کار داریم. الان یه دفعه اینه که از بین ما یک کسی میگه که من الان میتونم فکر دیگرانم بخونم. یا خواب میبینم این خوابا تحققش، واقعیت پیدا کردنش کاملا درسته. یعنی هر در خواب به من نشون میدن که چه اتفاقی میفته. خب الان چه نفر داریم که از این کردیت ها پیدا کردن؟ دستشون رو بلند کنند بله بله بله بله ببینید که کم نیست خوب دقت بکنید کم نیست اما ببینید ماجرا چیه ماجرا سر اینه که پس این رو متوجه شدین ماجرا سر ارفان دو بخش داره ارفان کمال ارفان قدرت ارفان کمال میخواد به ما دستیابی و دسترسی به کمال رو مویسر بکنه و ترتیبشو بده ارفان قدرت میخواد نحوه برتری ما رو چیکار بکنه؟ ایجاد بکنه امکان قدرت رو فراهم کنه خب من اگر خواب ببینم چه اتفاقی میفته نسبت به کسی که همچین خواب نمیبینه جلو میفتم یا نه از یه دستیسه پیدا میشه من اگر بتونم فکر دیگران رو بخونم برتری پیدا میکنم یا نمیکنم خب و اگر بتونم نفوذ کنم اگر بتونم خب اینا پس میشه دو مقوله متفاوت ارفان قدرت شبکه منفی حمایت میکنه یعنی میاد فردا رو نشون میده میاد نعوه خوندن فکر دیگران رو نشون میده حلوا به یه مسئله برمیخوریم به نام حلوا هر که حلوا خورد واپستر رود هر که سبرآورد گردون بر رود حس، حلوا خوراک کودکان صبر باشد موشتای زیرکان خب الان ما باید رو این مرحله رو جمع کنیم چرا؟ چون شبکه منفی میخواد به هر طریقی که شده یک کانال انحرافی بزنه چجوری کانال انحرافی میزنه؟ الان من یه دفعه اینم که بعد دارم فکر دیگران میخونم خب خیلی جذابه خب چی میشه؟ میگیم آقا این احسان رو کن؟ میافتیم دنبال این مسئله و این ما رو دور میزنه دور میزنه دور میزنه میاره یه جای دیگه. بنابراین اگر ما نفوذ در دیگران و مسئله که قدرتیه ایجاد شد حواسمون باید جمع باشه. دوتا کار میتونیم بکنیم. یکی اینکه اصلا خودمون میگیم آقا نمیخوایم. خب الان ایشون میگه که من نمیخوام. فهمیدم که منفیه نمیخوامش. درست شد یا نه یکی از میتونن برای ما دوستان اجازه به ما بدن ما قطع اتصال از شبکه منفی رو اجرا بکنیم براشون البته باید اجازه به ما بده ما خودمون راسن اقدام نمی کنیم خب درست شد یا نه اینم چرا مقابل همن؟ مقابل همان میدونید چرا چون به این اینطوریه ابدا خب ببینید در مقابل برداری که اگر بگیم بردار کمال باید یک ضد کمال وجود داشته باشه تا این ارزشمند بشه اگه این نبود خب این بردار برای همیشه به راهش ادامه میداد و ما اصلا نیاز نبود کاری بکنیم خود به خود در کمال قرار میگرفتیم اما الان لازمه که یک کارایی انجام بدیم بنابراین این ضد کماله که به کمال معنا داده ارزش داده درسته یا یا اگه از زده کمال نبود اصلا ما دنبال کمال میگشتیم میگشتیم دنبالش جانم به خاطر اینکه شبکه مثبت شبکه منفی به خاطر که اون مسئله شما را از کمال باز میداره بعد شما دیگه خوشتون میاد فکر دیگران رو بخونید بعد یک سال دو سال سه سال چهار سال به خودتون میاد ببینید که 20 سال دارید فکر دیگران رو میخونید بعد اگر ازتون سوال کنن که از کجا آمدیم، چرا اومدیم کجا میریم شما نمیدونید به عنوان مثال میگم خب و اون شیرینی و اون حلوا نگذاشته تا ما به موضوع کمال بپردازیم میشه عامل انحرافی درست شد یا نه؟ به این دلیله جان. دوباره همینه دوباره همینه بله ببینید دوباره همینه حالا اینا رو در ترم دیگمون همون مفصلتر راجبش صحبت می‌کنیم دلایلش رو من فقط اینجا اطلاعش و هشدارش رو دادیم تا بعداً فرصت پیدا بشه بیشتر راجع به صحبت کنیم جانم جانم ما روی بچه‌ای 11 ساله می‌تونیم کار بکنیم می‌تونیم از دوران جنینی الا اون که باز و صفه برق می‌خوره و بعد می گفت یه نور خیلی قشنگ میاد مستقیم تو چشم بله بله حالا 12 ساله چهار سالم بود ممکن اینا رو ببینید. خب یعنی آره سالم بود میگو این چیز مطلبی نیست. بله میشه از دوران جنینی فراموش نکنین از دوران بارداری روی یک جنین میشه کار کرد تا دیگه الاخ. بعد استاد این صحنه‌ای که می‌بینه این چه اثر درمانی داره؟ ببینید همه چیز تو این رابطه صرفاً در این جهت نیست. بعضی چیزا گفتیم سیر و سلوک. بله. یعنی درس مفاهیمیه. و ما خیلی از مفاهیم رو دیدیم می‌بینیم و شما خواهید دید برد. یعنی مفاهیم اصولن در اروا ادراکه اشراقه اشراق یعنی چی روشن شدن برد. روشن شدن معمولا با دیدن با همراه با ادراک دقیق خوب برای همین میگن دنیای اشراق برد. نمیگن دنیای کتاب خوب بشوی اوراق اگر هم در مایی برای برا همین میگن که در واقع در دنیای ارفان به ادراک و اشراق اصولاً تکیه هست ببینید شما اگر هزار جلد کتاب راجب اتصال اسک و اشکن می‌خوندید، به اندازه یه ارتباط شما معصر بود؟ نه نبود شما یه ارتصال بگیرین بهتر از اینه که هزار تا کتاب راجب اتصال بخونید اینه این دنیاییش که در این دنیا ادراک شما مستنده بله. شما بگید من درک کردم توش قرار گرفتم اینه استاد ببخشید من قبل از که خودم بیام اینجا دوستم رو من کار میکرد یا خودم اتصال میگرفتم حتی شبه را تا سوا خیلی سحناهای قشنگیدم ولی اون موقع که اومدم این تو این کلاس نورای خیلی زیاد میبینم رنگی بیشتر میبینم دلیلش چیه؟ بله خب بیام سراغ چند تا موضوع رو خواب نور و رنگ البته این رو توضیحاتی دادیم کسانی که اصولا با نور و رنگ و اینا برخورد کردن دستشون رو بلند کنن دوستان بله. خب این یه چیزیست که اصولا تو این قضیه هست بحث خواب توضیح دادیم که الگوی خواب عوض میشه عوض خواهد شد در دنیا ارفان الگوی خواب عوض میشه تغییر میکنه خواب شفاف رنگی بازه و هدفمند میشه. ما تعبیر خواب نداریم. درست شد یا نه؟ از این دوره استارت خورده میره جلو تا بالاخره در انتها. چون خواب هم یکی از راه های آگاهی و رویت و اینا هست. لذا از همین دوره یک شروع میشه به اصلاح شدن. چند نفر خوابشون رنگی و شفاف و شده؟ دستشونو بلند کنن؟ عوض شده دیگه الگوی خواب عوض شده استاد زیاده آلا. هم میشه خوابمون زیاده یعنی تو هم اتصال بقرکا خوابم الان توضیح میدم <تصفح> درسته درسته نماز صبح و... درسته و... خب توجه بکنید ما این جلسه سوممون زنگ اولش خیلی مهمه چرا؟ چون این چیزایی رو که در از این دو جلسه تست کردیم و اینا مفاهمش و تفسیرش رو باید بدون چون خودتون میان بهتون میگن که ارتباط به ما دادید ما خوابمون زیاد شده ما خوابمون کم شده خوب اینها رو میان به خودتون گزارش میدن کمانی که شاید هم الان هم تا اینجا گزارش دادین بنابراین تفسیر اینا رو خوب دقیق بکنید ببینید ما مثلا فرض کنید در مورد خواب دو ساعت خواب داریم خواب با انواج آهسته مغز خوب در واقع و خواب با حرکات سریع چشم پس یک چیزش که خواب سطحیاست با امواج عآیسته مغز و یکیش با حرکات سریع چشم رافیدا ممن در این حالت هست که خواب عمیقتره ولی زمانش کوتاهس اکثر افراد خوابشون سطحیه خوابشون عمیق نیست بنابراین هشت ساعت میخوابند بلا هم میشند و فکر میکنند که خب هشت ساعت خوابیدن دیگه دیگه از نظر روانینا دیگه این روشو نمیشه برن بگن یه دو سی ساعت دیگه بخوابیم یه روز هم این کارو بکنن دو روز این کارو بالاخره بلاخره مورد معاقضه محیطی قرار میگیرند که خب چقدر میخوابی بنابراین اکثر ما در فقدان در بقدان خواب عمیق به سر میبریم یعنی بدن ما یعنی وجود ما به این خواب عمیق نیاز داره و گرسنه یه همچین خوابیه خب تو شرایط معمولی خب ما همچین چیز فراهم نمیشه قرص خواب چیز خواب آورم که ممکنه همچین چیزی رو باز ازیاد نکنه لذا یکی از چیزایی که شما مشاهده خواهید کرد اینه که تا ارتباط میدیم این طرف رفت و به خواب عمیقی هم رفت یا خودتون حالا. تا میگید ارتباط میبینید که رفتید در حالی که معمولا این افراد افراد خوشخوابی نیستن معمولا بدخوابن اینه که اینجا خوابشون میبره بدخوابن افراد بدخوابی هستند درست میگم یا نه؟ خب بنابراین اینجا میاد اون فقدان و اون اشکال چی میشه؟ شناسایی میشه برطرف میشه و بعضیا خوابشون کم میشه یعنی بر حسب عادت بیش از حد لازم خوابیدن خوابشون کمتر میشه بعضیا بغدان خواب زیر دارن و جبران میشه یکی از دیگه از موارد پس این در مورد خواب در مورد خستگی جانم در رابطه با خواب میکروفونو ببخشید استاد من همیشه مشکلی داشتم از بچگی هم یادم هست که پرخواب بودم یعنی اصلا خودم تلافی میشودم از این مسئله بعد خب حالا تیام که رفتم یه سری باز اونجا خوابم اضافه شد. ریک هم که کار میکردم باز خوابم میورد. اینجا اومدم همون مشکل دارم. پس این بیرون روزی ها اگه بیرونوزیه که میخواد تموم بشه. بله بله. یه حالتیه که من الان واقعا زندگیم داره مختل میشه. چه خوبمیشم، همیافتم. حالا به من از بیرون روزی دردی که داشتم اونها که کلافه شدن. بله. ولی این خوابم واقعا بله. آسی شدم دیگه. بسیار خوب. عرض کنم خدمتتون که حالا تو همین رابطه شما هم اسمتون بذارید با پیگیری بکنیم جلسه بعد حالا ممکنه مشکلات تیروئید چیزای نیم دام آزمایش قدرتی چیزی دارید ندارید چربی خون خب خیلی عادتام تو این رابطه میتونه باشه نمیدونم دارید یا ندارید آزمایشام همه خوبه چیزی ندارم فقط چیزی که هست من از موقعی که اینجا میام اتصالی میگیرم شبا کابوس میبینم من کابوس نداشتم بله خیلی کابوس میبینم مرتب بچه‌ام تفا حالا در مورد این مطلبم توضیح بدم دوستان که حتما باش برخورد میکنن از تو جزواتون هم هست بعضی خستگی ترشای دوران کودکی بسه حالا در این رابطه کابوس خب اینا هست و ممکنه این علت خواب زیاد با دفاع روانی باشه خیلی غذای و هر حال هست تو این مسئله ترس های دوران کودکی و عمدتا ممکنه به صورت کابوس و اینها بیاد رو بعضی مواقع برای ما مشخصه یعنی خودمون میدونیم که این ترس دوران کودکی مونه چند نفر داریم خب بعضی موقع کابوسه ما اعلیت نمیدونیم چند نفر داریم؟ خب یعنی کابوسه ولی نمیدونیم این کابوسه چی میخواد بگه ولی بعد از یه شب دو شب حالا سه شب بلاخره اون چیزی که آمیله که باعث ایجاد این کابوس شده تخلیه میشه و تموم میشه و در مورد خواب هم این مسئله رو اشهالا ادامه میدیم با هم دیگه ببینیم که نجس چطور میشه یه مطلب دیگه ببینید ما تعبیر خواب نداریم خوابی که در رابطه با اتصال باشه. خودش واضحه معمولا خوابایی که افراد می بینن افراد معمولی می بینن باید برعکسش کنیم. میگن خواب زن چپه. نمیدونم حالا عروسی بود اعضا میشه، ازاز عروسی میشه. جنگ صلح صلح سول میشه جنگ و این ماجرراده چیز ح هفته که. اما کسی که متصل خوابش واضح مشخص یعنی معلومه چه درسی میخوام بهش بدم روشنه اما باید در این رابطه یه مطلبی رو بدونیم شبکه مثبت خواب آینده رو به شما نشون نمیده به دلایلی که با هم صحبت میکنیم اگر خواب آینده بود شبکه منفی شبکه مثبت خوابی رو به شما نشون نمیده که مسترب بشین بترسین ناامید بشید و نگران اینا اگر همچین چیزی بود ما شبکه منفیه. اینا رو را ترم بعدی با هم بیشتر راجع به صحبت می بنابراین خواب شبفاب بازه رنگی هدپمنند. خواب عکی هم نداره شبکه مثبتنی بیاد عکی ها رو چیده نشون بده. از این خواب های هرچ چیز نه اگر نشون بده حتما یا درس یا آگاهی خلاصه چی توش یه ماجرای بیخودی وقت تلف نمی کنه که بیادی چیزی به شما یا به ما نشون بده بعد همین جوری هچالهب باشه نیست جان اون میکروفون رو بگیرین اینو به من بخواد بدین خوبی که الان ارتباط دارم خیلی قبولشون دارم الان خیلی تو جاهای فضاهای سبز و چیزی ولی همیشه ناراحتی داشتم چرا من کچکتر ارتباطی نمیتونم برقرار کنم با این حرفایی که شما میزنید با این چیزای جمعی که می گیریم فقط من خوابم مدت خوابم خیلی کم شده و خوابایی هم که می بینم همه خوبه خوبه یعنی خوابای یعنی با ش... رنگی رنگای سبز و روشن و خوابای خیلی خوبیه خوب. می‌خوام ببینم این ارتباط هست یا نه اصلا یا من خارج نیستم چون فکر می‌گم شاید من افسردگی دارم یا ناراحتی دارم نمیتونم ارتباط برقرار کنم شما الان یه ارتباط تو خواب برقراره خوب در بیداری بخش زمین ناخداگاه شما در بیداری هنوز مقاومت داره ولی خوشبختانه تو خواب ارتباطتون برقرار شده انشاءالله اینو ادامه میدیم من این مسئله حل میشه خیلی خوابم کم شده چون خوابای های زیاد داشتم ما شاید دو روز سه روز پشتم هم خوابای داشتم که میافتدم بله الان منتفی شده دیگه خیلی تموم شد تمام شد. شد شما نجه گرفتید و بقیه هم در ما جانم دوستاد ببخشید راجع رویای صادقه یا الهامی که به افراد میرسه این اصلاق شرک مثبت یعنی نیست اصلاق شرک منفیه ببینید باید بیایم تعریف کنیم منظور شما از رویای صادقه رویاه که فردا رو بهتون نشون بدن خب فردا رو نشون بدن آزمایش شما منتفی میشه اگر آینده رو شما ببینید آینده یعنی جزیات خودتون جزیاتی که به منافع من ارتباط داره ولی یک مغز نه مثلا آینده جهان و آینده مثل مکاشفه یوحنا مثل نمیدونم راجب داره اقبت صحبت میکنه منافع من توش نیست اگر منافع منو نشون بده دقت میکنید مثلا اگر که من تو خواب ببینم کی میمیرم خب چی میشه نقض ادالت میشه شما نمیدونید من میدونم بعد شما فردا منو میبینید که دارای سجایای اخلاقی بسیار بسیار بالاست. می دونم که مثلا یه هفته دیگه میمیرم یا دو هفته دیگه میمیرم. خب حالا اینا رو در ترم بعدی راجع به صحبت می کنیم که شما ببینید که منظور از این صحبت ها چیه. بنابراین این آگاهی ها که میاد نقض عدالت نباید باشه. نقض صدار ایوب بودن نباید باشه. یعنی آگاهی شما پیدا کنید از ای به یه نفر دیگه. اونجایی که تو فنجان قهوه و چای و اینا می بینیم. خب اونا شبکه مثبت نمیده که خب و نقز کمال نقض اختیار نقض اختیار خیلی مسئله مهمیه بنابراین اینها رو مثبت مصبت چیزی نمیده که نقز اختیار باشه مثلا فرض کنید به من بگه که اینو نخر اونو بخر از این راه نرو از این راه برو خب نقز اختیار میشه حالا اینا بحث های مفصلی داره من فقط مقدمتن خدمتون احس کردم که تو این ترم، فرصت داریم چی چیدای میاد، مسئله اتفاق میوفته تا اون موقع در نظر داشته باشیم تا مفسر ترم بعدیمون راجبش صحبت کنیم. دمانست. میکروفون مسین که اجازه بدین. استاد ببن... من قبلا خ... از یعنی از بچگی خوابه... خواب می‌دیدم. خوابی صادقه. بعد خواب مثلا یکی یه چیز زیادش تو خواب من میومد یا کسایی که فوت کرده بودن میومدن. بعد با ترس خیلی شدید بلند می‌شدم از خواب. اصلا از بچگی اینطوری بودن. بعد همسا هم سم تششؤ دفاعی داد خوب شدم بله. ولی الان دوباره یه هفته است خوابا رو می‌بینم بدون ترس همون خوابای صادقم هم هست یعنی هم خواب کسایی که فوت شدن رو دیدم تو یه هفته هم مثلا خواب اون همون دیگر. اینجا بحثی بود که اینجا داشتیم که اینجا این اشکالات تو یه باردی که در میاره رو بعد یه سری از این خوابای صادقه و اینا اصطلاحاً اسمش خواب صادقه گذاشته میشه در واقع تداخل روح و این دو چیزاست که شما هم که داره تجربه می کنید خبیلی شبکه منفی نباشه آلا. بله در مجموع منفیه و باید کار بشه قط بشه در مجموع قرار نیست که یه همچین اتفاقاتی بیفته ما فقط خلاصه بگم مجاز هستیم در جهت کمال آگاهی بگیریم در جهت کمال ارتباط بگیریم و نمیدونم هر مسئله هست در این رابطه است نه چیز دیگه ای خصوصا منافع مادی زمینی میگم خب ببینید اثراتشو ولش کنید چون اینا دیگه میشه مثنوی هفتاد من کاغذ دیدین تمومه بلش کنید دیگه بریم فقط اثرات عملیشو مورد بررسی قرار میدیم که خب حالا شما رنگو دیدین حالا چی شد نورو دیدیم حالا چی شد اون چی شده شون نتیجه ما میخوایم نتیجه که بعد شما میگید که آره من این نور رو دیدم این اتفاق روی من افتاد ما دنبال اون اتفاقا هستیم فعلا کاری نداریم اینکه در خیلی از مکاتب شرق کلی میدونن که اون نور رو ببینن یعنی وقتی اون نور رو دیدن میگن که بله من نور رو فلان رو دیدم به کجا رسیدم نمیدونم رسیدم به نور فلان ما اینا رو اصلا ولش کنیم و اصلا از این صحبت ها به اون صورت نداریم شما فعلا فقط تجربه بکنید و حصول نتایج عملیه این ماجره رو در واقع چکا کنیم؟ دنبال بکنیم ببخش. خب من اینجا اینم بگم اجازه بدین این مطالب درسیمون در واقع جا نیفته چون این چیزایست ببخشی دوستاد ما باید... در قرآنمون در رابطه با رو یا خیلی مثلا خواب صادقانه حضرت ابراهیم از کردم خواب حضرت یوسف اگه ما اینو نفیش کنیم موبخ... اجازه بدین در مورد این مسائل با هم صحبت خواهیم کرد فرق بین خواب من الان توضیح دادم خوابی که من در رابطه با منافع خودم ببینم شون ی... اصلا رویای صادقانه نداریم ببینید اجازه میدید که من سر جای خودش صحبت بکنم یا خیر؟ بله خب خوب ببینی بنابراین یک مسئله ایش که حالا اینا بحث های مفسری داره ولی من خدمتونه حض بکنم از همین جا که بخوایم بگیم چون من میدونم یه سری مفاهم که الان بین ما مشخص نیست. مسلما برای شما ایجاد سوء تفاهم میکنه ولی شما بفرمایید که اگر فردا رو شما ببینید امتحان شما نقض میشه یا نمیشه یک کلمه یا بله یا اصل مطلب رو که داریم و نداریم رو صحب سرش میکنیم ببینید این موضوعی رو که اسمشو بذاریم پاس کنید علوم غریبه بذاریم نمیدونم اون چیزه که نمیدونیم این توجیه نمیکنه من سوال از شما میکنم شما اگر بدونید فردا چه خبره با نغض عدالت ندارم. آزمایش شما نقض میشه یا نمیشه؟ ولی اینکه ما داشتیم افرادی که در خواب دیدن مثلا 20 روز دیگه فوت میکنن و این اتفاق افتاد براشون. اهدو افغانستان بودن و خیلی مثلا آدم مجاز نبوده ببینه. مجاز نبوده، هیچ کس مجاز نیست بدون کی کی میمیره. چه کسی که میمیره محرمانه است، جز اسرار الهی است و کسی نباید از اون خبردار بشه. وقتی خبردار میشه نقض ادالته و نقض من اگر بدونم چه میمیرم با نمیدونم خیلی تفاوت میکنم شاید لیاقت ها فرق میکنه ظرفیت ها فرق نه, میکنه نه نه نه نقض آزمایش میشه اون چیزی که آزمایش ما رو نقض میکنه حالا این مفصله توجه لیاقت فرق بکنه که دلیل نمیشه آزمایش رو تغییر بدن آزمایش برای همه ما یکسانه لیابلو اک تمام شده رفت هممون در یک شرایط داریم آزمایش میشیم دلیل نداره به شما فردا رو نشون بدن اما همین رو تجربه کردیم و همین ها که خدمتون میگم بر اساس اون است که وجود داره استدلالش هم ساده است خیلی ساده است بنابراین شما فقط هر وقت به من فرمودین که آیا فردا رو دیدیم آزمایش نغز میشه یا نمیشه شما آزمایش رو دستورتی داره که نمیدونید فردا چی میشه اگر بدونید فردا چی میشه هم نقض اختیاره هم نقض عدالت هم نقض آزمایشه حالا به روش بررسی کن خب بیم سراغ اصل ماجرای خودمون چون ببینید یه موضوع رو من خدمتون بگم مباحث مختلف به دوره های مختلف برمیگرده طبیعتا الان چقدر سوال داریم؟ خیلی زیاد و اینها پخش میشه در دوره ها، در حلقه ها، در چیزهای مختلفی ما در این دوره امدتا میخواییم حلقه ای رو مورد بررسی قرار بدیم که شوره لایی برامون ثابت بشه تو این رابطه سآلاتمون، مسئله و مون، مشکلاتمون رو با هم مورد بررسی قرار بدیم امیدوارم که بقیه سوالاتمون رو در سر جای خودش نگه داریم و اونجا پاسکو باشیم اما بحث خستگی یکی دیگه از بیرون‌ریزی‌ها خستگی مفرط سلولی اکثر ماها زندگیمون یه طوریه که صبح مثلا می‌بینی که باید سر این زمان هم خواب بلند شیم، بلند میشیم یعنی خودمون خودمونو رو داریم هول می‌دیم و در واقع از اینجا بود اونجا، از اونجا بود اونجا، بود بود بود بود بود و داریم به اصطلاح کارا رو جیز می‌کنیم. و هی خستگی، رو خستگی، فشار، روح فشار داره چی میشه؟ کلم بار میشه و بعد با خوابم حل و فصل نمیشه یکی از این زیاد اینه که مثل پوست پیاز لایه لایه میبینون خستگی میاد بیرون خستگی میاد بیرون یعنی انگار کو کندیم تو این اسکن ها در حالی که کاری نگردیم ولی مثل این که چه کار عظیمی انجام دادیم و یه خستگی زیادی میاد رو چند نفر این تجربه رو دارن اجازه بدین بعد که این منظره نباشه اصولاً ما سطح انرژی اون باید از سطح انرژی افراد معمولی بالاتر باشه چند نفری مرار رو رد کردن احساس می‌کنن الان انرژیشون ارتقا پیدا کرده، اومده بالا خب این بعد از اینه که این مرایل و بیرونی‌ها رو بیرون اینا رو, رو تیک کردیم اصولاً ما باید سطح انرژی مختلفمون انرژی ذهنی، روانی، جسمی همه اینا نسبت به دیگران بالاتر باشیم. خب این اتفاق دنبالشیم، پس اگر خستگی الان روح است بدونید که ما تحت استرس بودیم و این مسئله خستگی به صورت خستگی یه مسئله دیگه هم هست تنش این خستگی عمدتا به صورت خود خستگی تنش و استرس به صورت سنگینی و اون خستگی هم که به صورت خستگی خستگی منطق غیر عادی. یعنی ما کاری نکردیم برای میبینیم که این خستگی اومده رو. درست شد یا نه؟ پس منطق این قضیه بسیار ساده است. خیلی ساده و خیلی راحت ما الان میتونیم امدتا همشون تعبیر و تفسیر کنیم. بعد سهت تفسیرمون چیه؟ سهت تعبیرمون چیه؟ سهتش این آزمایه که بعد بینیم که این تموم شد. و دیگه ما سطح انرژیمون اومد بالا. ساته راحتیمون مثلا این تموم شد حالا بدنمون احساس میکنیم راحتره چند نفر احساس میکنن آرامش به دست آورد آرامششون بیشتر شد چند نفر بحث افسردگیشون احساس میکنن که بهتر شده وضعیت بهتر شد خب ببینید اینطوریه این صحت این تفسیر هاست یعنی در عمل با هم دیگه میبینیم جلو میبینیم که بله ما هر کدوم داریم روند مشخصی رو داریم با هم دیگه طی میکنیم یعنی نمودار به ما میگه که چگونه ما حرکت خواهیم کرد و حالا اگر که دوستان تا خاصی ندارند میریم یه چند تا رو با هم بررسی می کنیم. اگه سوالات دوین رابطه هست که پاسخ بدیم. جانم جانم. خب بفرمایید. بیماری های روحی روانی رو میتونیم معالجه کنیم. تا هم همین مرحله کردیم. منظورتون میشرفتیم. منظورتون روحی روانی چیه؟ مثلا فرد افسردگی داره الان من آمار, آمار گرفتم ببینید دیگران رو. خوب دقت کنید من الان آمار گرفتم چند نفر با دیگران روی مسئله افسردگی کار کردن و تو همین فاصله یه هفته نتیجهش معلوم شده چند نفر خوب یعنی نتیجه گرفتن دیگه کار کردید نتیجه گرفتن شما همینطور دیگه بله کار کردی نتیجه گرفتن درمان رو رو خودمونم میتونیم انجام خب میتونیم خب من هلا موزئی... سحار گفتم که چند نفر این مسئله خب در... درمان مباده است در خب. درمان موزهی باشه منم سوال چند نفر درمان موزهی انجام دادن و شد گستشونو بلند کنن شد دیگه نه درمان موزهی چند نفر انجام دادن و شد خودمون که خودمون در ارتباط قرار میگیریم دیگه نیاز نداره دست منو بگیریم پا مون می‌گیریم، گردنمونو می‌گیریم. و خودمون می‌شینیم در ارتباط قرار میگیریم. نیاز به کار اضافی نیست که مثلا موچیمو بگیریم. میتونید این کارو بکنید ها. ولی در واقع نیازی نیست. چون ما در این هوشمندی هستیم. خب درمان موذی شد یا نشد؟ شد دیگه. نه، اونه که من میگم شد، میگم شد. چه نفر شد؟ شما با چند نفر کار کردی؟ با خودت، خودتون که هیچی؟ با یه نفر دیگه یه نفر کافی نیست آمار ببینید ما درمان موزعی رو داره میگیم ببینید کار است آماری توجه بکنید دوستان توجه بکنید توجه بکنید کار است آماری یعنی باید شما با چند نفر انجام بدید میانگین بگیرید خب شما به یه نفر بر میخوری اصلا تو دلیس به شما میخندید خب حالا درمان غیرموزعی اجازه بدین درمان غیرموزعی یادتونه که چیه دیگه بگیرید از اینجا مثلا میگیرید کانال باز میشه تزریق میشه شوک میشه چند نفر انجام دادن و شده خب چند نفر از انجام دادن چند نفر انجام دادن و شده نتیجه گرفتن خب شد دیگه که بنابراین اگر چهار نفر انجام بدن بشه یعنی بقیه هم باید بدونن که میشه برقی خب من جنبندی بکنم جنبندی بکنم بنابراین حالا من توضیح میدم خدمت دوستان در مورد همین کانال و تزدیق و شک و اینها در مورد این غیر موزعی زایات مغزی زایات مغزی مثل مرگ مغزی، ضربه مغزی، سکته مغزی، تومور سر، ام اس، پارکینسون، آلزایمر و مشکلات چشمی هم اگر که باز در اینجا زایعات نخایی، زایات چشمی مثل انحراف چشم، خب مثلا انحراف چشمو شما میتونید که در واقع دوتا تا گوشو مثلا بگیرید کانال ایجاد میشه بعد یه نفر رو دور بذارید و فرد رو بخواد نگاه بکنه به دور و بعد چشمش در یه تنظیم میشه شما کانال رو دارید فقط یه نفر از روبرو بشینه میگه تنظیم میشه یا نمیشه تنظیم بشه یه بار تنظیم بشه دیگه مسلما این قضیه به تنظیم کشیده میشه انرا چشمی که وجود داره یه نفر رو می‌ذارید دور به سوژه شما چشم سوژه رو زیر نظر داره و سوژه داره به اون نگاه میکنه حالا مثلا میتونید گوش مثلا دستاینا میتونید فرق نمیکنه ولی گوش رو میگیرید خود سوژه به شما میگه که کانال ایجاد شده خب کانال رو گزارش میده و بعد شما که این رو نگاه داشتید چشمه سوژه شروع میکنه به حرکت پیدا کردن و در یه جای تثبیت میشه اون حالتی که تثبیت میشه برمه صحیه چشمه فقط کافیه یک بار تاصی بشه ممکنه دوباره از کنترل خارج بشه ولی برمیگرده و برای چند بار انجام دادن این تاصی انجام خواهد شد خب طعم ولی که دیگه انجام میدید و ببینید که نتیجه چجوریه در مورد بیماران افسرده خب حالا نتیجه بدون عینک برین چیز میکنید یا نه ببینید موضوع اینجاست که شما در ارتباط ارتباطاتونو میگیرین دیگه تغییرات متوجه میشین تغییر داره یا نداره دیگه درست شد یا نه جان زایات نخایی در مورد تومور مغزی تومور مغزی دوباره میتونید از گوش از سرشونه از دست کانال بزنید میره روش و بعد گزارش میده که داره کارایی صورت میگیره خب کارایی صورت میگیره البته راه دور رو اینا هم که انجام میشه فیلم هم داریم مدارک هم هست برای این کار اتفاق افتاده خودتونم گزارش میتونید بیارید پار بکنید گزارششو بیارید در مورد سکته که کانال زده میشه چجوری کانال زده میشه؟ خب اجازه بدین بسیار چند نفر تو همه ما تحدیه شرایط امرین تو کلاس الان من سوال کردم چند نفر کانال زدن یعنی با دستشون درمان غیر موضعی رو کانال زدن جواب گرفتن ببینید من دفعه پیش توضیح دادم یه بار دیگه توضیح میدم خب همه دوستان تحت یه چند نفر اصلا مفاهیم درمان غیر موضعی رو میدونن چند نفر الان آ کلاسمون چند نفر مفاهیم درمان غیر موزعی رو که دفعه پیش توضیح دادم میدونن که چه مفهومی داره چند نفر متوجه اصلا نشودن که درمان غیر موزعی یعنی چی بله بله میکروفونو بگیریم لطف بکنید اون چی رو که من عادة چند نفر سوال میکنیم لطف بکنید چون ایشون حق دارن به خاطر اینکه این, این توضیحات رو زیاد میدم ممکنه یه جایی که توضیح میدم، نیست خودم کاملاً این موضوع رو درکش میکنم اشاره بکنم و فکر کنم که همه فهمیدن. خب این یه اشکاله متاسفانه این اشکال رو کسی که در واقع میخواد انتقال بده، اشکال متاسفانه داره. نیست خودش درک کرده، میدونه، کار کرده، فکر میکنه تا گفت کانال همه فهمیدن که کانال یعنی چی. ولی حالا سعی میکنیم که اخود دوستان این مفاهیم رو تعریف بکنن تا تعریفش مشخص بشه بفرمایید استاد من خودم شخصا توی این هفته با 6 نفر کار کردم بعد تمام مواردی که شما فهمیده بودین سعی کردم که همه رو داشته باشم یکیش مثلا راه دور بوده هم همزمان بود هم غیر همزمان که یک طرفه رو امتحان کردم روی دایم که اصلا قبول نداشت نتر گرفتم و دو طرفه رو امتحان کردم با برادرم باز هم نتیجه داد بعد در رابطه با خود مادرم و دوست مادرم همین مربوط به قیر موزعی رو رابی. انجام دادیم بعد من فیل میکنم با این مسئلهی که بگم ادنه آقا جواب ساعدشون رو میگیرم و اینکه درمان با خود هدایت شبکه که بود مثلا به صورت مادر خود من کانال رو تجربه کرد دوست مادر من شکر رو تجربه کرد الان الان من میگم استاد بعد. مادر خود من وقتی که چون من به حال مادرم بود تماس با دست رو روش انجام دادم مادر من حس میکرد که یه راهی توی دستش داره باز میشه لوک بکنید تشریف بیارید اینجا بذارید من اینجوریش کنم که ایشون بگه بعد درس درسه قبل بود خب می دونید درس درسه قبل بود <تصفح> لوک تو کنین تشریف بیارید اینجا حواسه به جای من منو نگیریم اینجا این تیریون بود خب، حالا برایشون توضیح بدین که ببینید من اینجا الان دارم خب، از اونجا هم نیفتیم پایین؟ خب، درمان با تماس دست در شد درمان موضعی و درمان غیر موزعی درمان غیر موزعی گفتیم که ما حالا شما توضیح رو بدین تا من خودم برده تشکر اینجا، تشکر اینجا اینا میگید بگیرید از روی این حد توضیح میخواهید بدین فقط گفتم این تریبون رو نگیریم خواهش حالا فصد... توضیح اون بعد رو به اون گرام بفهمید در رابطه با درمان با دست یکی درمان موذی بود گفتم مادر کله دست دسترد کلا معمولی بود روی دست مریض من دوست عزیزمو مخصوصا ایشون برایشون توضیح بدیم بایدرم دست راستش دستش اصلاد یکیش که قدرت لنفاویش رو برداشتن این دست چپش ورم کرده دست راستش هم درد داره به خاطر حالا این مسایی این خود درمان موزهی رو روی رو رو این دست راستش انجام دادم به نتیجه رسید روی دست چپش که الان این ورم رو داره ورمش باعث میشه که دستش سفت شده ویدی این دست رو الان نرم شده یعنی به کاری که توی ایران از نظر درمانی دو ساله داره انجام میشه یعنی توی دنیا نبوده تا الان و توی ایران هم دو ساله که تازه اومده این دقیقاً این نیرو داره, رو دست داره این عمل رو روی رو دست چپ مادر من داره انجام میده و دست چپش الان نرم شده یعنی کی... شما گرفتین بله. شما ما گرفت دستش رو گرفتین به خاطر مشکلات لنفاوی که پیدا کرده ورم داشت سفت, بله. سفت شده بوده سفت شده واسه استاد هر کدوم از این بندهای انگشتش و دستش همه ورمه همه این ورم رو بله. داره که دکتر گفته که این هیچ وقت خوب نمیشه و به مرور شما فقط باید این رو کوچیک کنید دستستون رو با یه قضیه که بیرون رو فیزیوتراپی انجام دادن چون این دست قلاده لنفاویو برداشتن فازا بله. بر و بعد در موزی به صورت موزی گرفتین بعد دیدین نرم شد؟ بله نرم شد و مادرم گفتش که حس میکنم یه چیزی از توی دستم میاد میره اینجاها اینجاهایی که نداره. شروع یکی یه چیزی حالت مثل ضربان داره. زربان بلد. و بعد هم تاثیر گذاشت رو برامیش نه ولی نرم شده اون سفتی دستش رو از دست داده. بستار. خب حالا این موردی رو که ایشون گرفتن و یه چیزی راه افتاد کانال و اومده که راه باز کنه قدرت لمپاوی رو تحریک کنه حالا هر کاری بکنه که عضله نداره و خارج کردن اینو متوجه شدن باید. که این کانال هست به این میگفته میشه کانال حالا من کانالو در واقع اینجوری میگیم که دستو بگیریم گزارش که میخوایم میبینیم در یه جریانی راه افتاد ممکن بیاد بره تو مغز ممکن بره رو خلب ممکن بره رو روی داب روی کبد کلیه نمیدونم تحال معده و اینو ما بهش میگیم کانال اگر همین کاناله حالتی باشه مثل یک میله حرکت میکنه تو بدن که معمولا درد داره تضریق استاد تو دوست مانه هم اینو خب اینو ما بهش میگیم اسم که خودمون کردیم دیگه میشون میشین میگیم تدریقه خب تذریق و اگر که بگیریم حالت شکل دست بده چند نفر داشتیم که حالت شکر رو تجربه کردن؟ استادونم دوست خودم داشت. خب شو خودتون من می‌ذارم توی تریبن من از در استاد یه قضیه دیگه برای دوست مادرم بله که بله خیلی خوب. این رو هم اگه اجازه بدید خدمتتون میگم استاد دوست مادرم اشون هم همینطور وقتی دستشون رو گرفتم ولی دوستت خودم به طور ناگهانی خیلی نمی‌دونم که این منفی بود یا مثبت حس کردم که معده‌شان دربان داره. یعنی یه زرببان رو خودم وقتی ازش رو گرفته بودم حالا نمیم حد زدم که اینطوریه یه بعدی ازش پرسیدم گفتش که دکتر به من گفته که مدادم ورم داره ولی این رو هم من تونستم فقط همونطوری با زربانی که دستش رو گرفته بودم نمیم چطور ولی مطاحه شده بله خب این با خاطر اینکه همون رد و اثر و اینا که ایجاد میشه. بحث صورت خیلی ممنون. نمیدونم کافی شد یا کافی نشد اگه کافی نیست داده من توضیات بدم خب. <تص> نا، یه خورده با هم صبر کنیم جا بیفته بهتره تا بریم دست جدید تن. خب اجازه بدین. دوستانی که این مطلب رو بعد از استارتی که زدیم رو دستشون به دست آوردن، بله قبلن. یا قبلا داشتن. اینجا شد دیگه. بله اینجا بعد از اون مسئله بغنه یه آدمی الان تو خیابون یکی رو بگیره که این اتفاق نمی‌افته که. خب بله من بودم که اینو بعد از جلسه با اتون نه همینجا بفرمی که همه گوش بدم بفرمی عوض مخابه از بایش همه بایش دوستان من عرضم برای که اگر از صحبت از آگاهی و عرفان داریم میکنیم حضور تنها کافی نیست ما بایدتی که تلاشی بکنیم بایدتی که در یعنی تفاوت بین منی که اینجا نشستم بلی. و کسی که جستجو میکنه در همون چیزی که به دست میاره بله درسته بنده اگر بدون هیچ اطلاعی بدون هیچ توانایی بدون هیچ فعالیتی فقط حضور در اینجا عامل این بشه که من توانایی رو به دست بیارم این دقیقاً مغایر با همون ادالتیه که میفرمایید یعنی اون کسی که این امکار رو نداره و من دارم یک خب. دو، مثلا خب. یکی که... یکی با هم بریم جلو که غم نشه ببینید اگر که ما الان چیزی به دست نمی آوردیم شما ممکن بود بفرمایید که خب ما که اومدیم به دست نیاوردیم حالا که میخوایم بگیم به دست آوردیم شما میخواد بفرمایید که نه حالا که ساده به دست آوردیم ارزش نداره و این مقایره با عدالت الهی این مقایره عدالت الهی نیست این رحمانیت الهیه شما میتونید استفاده بکنید میتونید استفاده نکنید خب و در واقع همین رحمانیت رو به خیلیا تو خیابون می‌بینیم میگه نه نمی‌خوام چند رو گفتین آقا بیا استفاده کن گفتن نه, نه نه برو چند نفر چند پس در واقع همه میتونستن از این قضیه مستفیض بشن استفاده بکنن بنابره این نقض عدالتی چون من انجامش نمیدم خودش انجامش میده خودش از اینو طرایی کرده خودش ما رو در معرضش قرار داده این ما نیستیم که درمان میکنیم این اوست اوست و تعریف و حلقه و همه رو خودش گذاشته طوری طرایی کرده که شما دست دراز کردین میگیرید یکی دست دراز نکرده نمیگیره دقت میکنین بنابراین این میشه ماجرای خر مولا اگر به دست نمی آوردیم چی میشد می گفتیم که آقا ما رو بیخود اینجا جمع کردیم که چیو و وقتمون تلف شد و بیهوده شد حالا که به دست ها بردیم میگین نه این که چون ساده است این مقایرت میکنه مقایرت داره با عدالت الهی حالا یه وقت چیکونیم کم لطفاً فهمید اینکه این فرمایشتون یه خورده کم لطفیه خاطر اینکه من چیزی رو به دست نگرفتم من میخوام بفهمم من, نه. خوبه خوبه خوبه. من اومدم وقتم رو گذاشتم برای اینکه ببینم جو چه داره میفته. فرمایش ها توزنوالی رو, رو کاملا به گوشی جان گوش دادن بله من بلی هستم که لطف نه لطفی نیست من علاقمندم همه جا تلاش میکنم که یاد بگیرم این هم دوشه وظیفه وزیفه انسانیمه بلد. اما این سوالی که کردم خرم نبود این سؤال ام بود که <تصفيق> نه آقه من اولی می‌کنم ببینید از, از فرواشات شما من استفاده کردم که ادالت فعلا. وقتی در این صحبتشو می‌کنیم ادالت معلیش اینه که یعنی چی باب ببینید هر از, مفاد... از فرواشات شما این استم با تو کردم که هر کسی وارد این محیط میشه بله. یه چیزی رو میگیره که هیچ جای دیگه هیچ چس... کسی دیگه نداره درست میگم <تصفح> یا ببینید. کنم که چه میگن راه های رسیدن به کمال به اندازه تعداد نفوس انسان هاست. هرگز نگفتیم که فقط میده. گفتیم که این هم ما داریم حالا در مورد اینه که داریم موضوع اینجاست که هرکس انجام بده دست خالی نخواهد بود. مردود نداریم یعنی هرکس بیاد تو میدون آزمایش نه اینکه بگه بر رومنا روی من نه. هرکس در این میدان آزمایش آزمایش بکنه اینه که دست خالی نیست تا حالا نداشتین. از حالا به هم هر کسی هم بخواد میتونه استفاده کنه پس بنابراین بیادالتی نیست موضوع اینجاست که آیا ما میخواهیم خواستیم و نشده بنابراین در بحث ماجرای ادالت الهی اینجا نقشه خودشه طرح خودشه خودش داره انجام میده و اصولا اینطوری نیست که بیادالتی شده باشه این از این مساله باز البته خواهیش بکنم ما امیدواریم که اعلاده امیدواریم بهترین دوسته ما همون کسی بودن که این صحبت ها رو کردن چون سخت گرفتن ولی بعدا دیدن نبا بابا این هم نیست و در واقع اگر بیان تو میدون آزمایش دست خالی کسی نیست اما شما اگر به عنوان تماشا چی بخواید نگاه بکنید باید به گزارش و استنادات دیگران ما از همه دوستان میگم دوستانی که فعالیتی نداشتن من اینو میگم باید به عنوان تماشاچی دیگران که تایید کردن اونا باید قبول بکنه یعنی نظر اکثریت مطرح میشه بنابراین من توصیه میکنم که تماشاچی نمونیم خودمون تست بکنیم بذارید اگر هم میگیم نیست خودمون بگیم نیست دقت بکنید بعد از تست گوش میدین چون ما آمارگیری بکنیم اول اونایی که اصلا کاری انجام ندادن همه رو کنار بین اونه که میگیم چند نفر انجام دادن یه تعدادی چند نفر نلج گرفتن یه تعدادی یعنی اونه که انجام ندادن اصولا چی میشن میرن کنار حذف میشن بنابراین اجازه بدین ما تماشاچی نمونده باشیم این چقدر اصرار میکنیم که در واقع تو این میدان فعالیت بکنیم تا خودمون لمسش بکنیم و به تجارب دیگران اکتفا نکنیم خب این مسئله حل شد یا نه خب شما کار بکنید ببینید یکیش مثلا شرعه و در مورد سر ما داریم الان تعدادی از پرادرمانگره که بینمون هستند اینا بیماره سرعی بودن از سالها قبل و مدارکشون هم خودشون دارن بنابراین این مسئله در واقع هست لذا شما کار بکنید شما تجربه بکنید هیچ موردی رو نگید که اینی میدونم که این نمیدونم بعد از زایمان شده این شما کار بکنید شما تست رو رو همه کیس‌ها ادامه بدید بس... جان ببخشید این دوستمون راجب عدل و اومدن این کلاس که آیا هر کسی که میاد تو این کلاس اگر از جنبه رحمانیت خدا بتونه استفاده کنه شما فرمودید این عین عدله بحث قبلی که بود راجب رویای صادقه شما رویای صادقه رو دقیقاً با همین فرض با همین منطق رد فرمودید گفتید که حالا اگر خدا به بنده حقیر اینجوری دلش خواست که یه رویای صادقهی بده که فردا بورس ایران میتره که من سرمایه گذاری کنم اون رو خلاف عدل و خلاف جنبه بله هنوز هم اینها میدونی. میدونی و این یکی رو نمیدونی چرا این یکی وجه تشابهش با اون چیه؟ این؟ چه کسی اونو خدا داده خودش اینجوری صلاح دونسته همین هوشمندی که شما میفهمید اسم, ما... اسم هم میزاره خدا اجازه به اونو شبکه منفی داده اولا اولا شبکه منفی داده که فردا بورس مثلا مثال, مثال که... بود نه نه نه نه, نه مثال نه. اونو شبکه منفی داده اینجا این بحث شبکه مثبت اون بحث شبکه منفیه. منفیه و بعد بحث اینجاست که به صللا همه میتونن از این مسئله استفاده کنم به کسی هم ضرر نمی رسه ولی اون به کسی ضرر می رسه. شما اگر بدونید فردا چه سامی میکنه اگر بدونم دوستم می بیرون تصادف میکنه به ضرر می رسه بهش بگم نه آقا فرض فرض بدونید ان اینا توجیهاتی است که شما اگر اون مسئله اتفاق افتاده باشه که حالا بحث داره من برای همین خدمتون میگم که شما نمیتونید جلویشونو بگیرید. توجه می کنید الان اینا بحث داره، صحبت داره و مال این دوره نیست. شما اجازه بدید ما این موضوع این دوره رو حل و فصلش بکنیم. چون خود جناب عالی گفتید این موضوع حل شده چون برای من حل نشده عرض کردم. ببینید حل نشده. نشده. من هنوز ببینید دارم توضیح میدم که شما نباید ببینید فردا بورس میره بالا یا میاد پایین. راضی مثلا چه می میره رو بگید. بورس رو بیاد من اشتباه, اشتباه کردم. در مورد بحث اینه که ایشون کی میمیره، چه جور می میره به چه شکلی می میره محرمانه است. اسراره و شما بازم نباید بدونید توجه می کنید رو اجازه بدین سر فرصت خودش ببینید من نمیدونم میرم بیرون ماشین بهم میزنه. الان یه جور رفتار می توجه میکنین چون فکر می کنم دو سال دیم زدم. توجه فرمودین فکر می کنم دو سال دیم زدم. این در صورتی که من آگاه بشم که برم بیرون ماشین به میزنه. من اصلا تغییر می اون تغییر من مصنوعیه. به دردی دیگه نمیخوره حالا به هر حال یه اصولی هست که اون اصول رو با هم دیگه باید مورد بررسی قرار بدیم اما در اینجا شما از این شعور اله استفاده کنید به کسی ضرری نمیرسه همه میتونن استفاده بکنن این فرق میکنه با اون موضوع ولی شما بورس رو بدونید یه ده ورشکست میشن نه مثلا حضرت یوسف راجب قحطی دونست کسی ورشکست نشد ببینید حضرت یوسف در زمینه کمال با اون پیشبینیش چکار کرد به چی رسید خدمت به خلق همونی که من میخوام در اومدن اینجا برسام دیگه گفت یه سری از گشنگی نمردن ببینید کمال با شکم فرق میکنه قوم بنی اسرائیل براشون نون از آسمان بارید موسی براشون نون از آسمان بارون به کجا رسیدن استاد خیلی از مثال این منم شکم اینجا این خانم توضیح دادن که معده کسی زربان داشت این در خدمت شکم اگه بخواییم بساسمون باشنم؟ نه نه ببینید قوم بنی اسرائیل شکمشون سیر شد شروع کردن به قرغور کردن پس کمال با شکم با سیر شدن شکم فرق میکنه خب ببینید برگردیم اجازه بدین توجه بکنین ببینید از کنم خدمتتون شما الان همه رو با هم قاطی میکنین بحث حکمت بحث دعوت اینا با همدیگه اصلا اینا از جنس نیست. دیدن بورس با دعوت دو تا مسئله جداست. دو تا قضیه کاملا مجازاست. الان شما میخواید که مسائل زیادی رو با همدیگه و یک جا چیکار بکنید؟ حل و فصلش بکنید این نمیشه. این دوره اجازه بدین این دوره آشنایی با شعور کیهانیست. خب تئوری و عملی. تهوریشو با هم جلسه یکمون دوره کردیم بعد میاد عملی میتونیم ازش استفاده کنیم یا نمیتونیم استفاده بکنیم درست شد یا نه و تمام کسانی رو که در اینجا حضور دارند ما نبا تبلیغات خب و نبا معارفه تمام این افراد اعتراف کردند که ما تحقیق کردیم اومدیم این کلاس یعنی از طریق معرف ها تأخیر کردیم فهمیدیم کلا چیه اومدیم درست شد یا نه بنابراین جان حالا کنشکاف شدیم بسیار خوب میتونیم چیکار بکنیم مسئله رو دنبال بکنیم بیایم ببینیم که قضیه از چه است اگر تا اینجام تخلپی در اون که فکر کردین پیدا کردین یا اونی نبوده که میخواین همین الان میتونه انصراف بدیم یعنی مشکلی نداره بازم علا رقم اینید که ما نه تبلیغی داشتیم نه معرفی داشتیم اگر بین اون چیزی که پیدا کردین با اون چیزی که ما گفتیم و به هر حال تخلفی پیدا میکنید توجه میکنید بازم اشکالی نداره جانم جناب دکتر بفهم بله ببینید اجازه بدید که اینجا چه امتحانی بکنیم وقتی شما قفل زینی باشید اینجا که سل هیچ کجا این قفله به این شک باز نمیشه. مگر اینه که شما پیگیر کارتون باشید خارج از اینجا اینجا، اونجا ارتباطات مدام برقرار بکنید این نیست که الان شما بید اینجا این قفله اینجا بشکنه قفلو تا شما همکاری نکنید بمب اتوم هم نمیتونه بشکنتش دقت بکنید این قفل اینجوری نیست الان ما این جز آزمایشاتمون خواهد بود که تا میریم آخر دوره که قفل بودن تا آخر دوره قفل باز شده. شاید تا همین الان هم داشته باشیم. چند نفر داریم که جلسه اول چیزی متوجه نشدند جلسه دو سه متوجه شدن دست بلند کنند ببینید اینه این ماجراس اینطوری این نیست که من صداق بعد نه وقت داریم نه فرصت داریم اینجا فقط میتونیم درس ها رو مرور کنیم رو بدیم افراد دنبال کنند مسئله رو و پیگیری بکنن، تا اون قفل شکسته بشه تا پیگیری نکنن تا نخوان یعنی یه نفر بشینه و بگه قفل منو بشکنین هیچ نیروی در عالم هستی نمیتونه اون قفل رو بشکنه. بحث شاهد رو تعریف کردیم. خب شاهد چی بود؟ من اینو توضیح بدم. شاهد چی بود؟ تا کسی شاهد نشه، نظاره نشه. و محقق نشه بی طرف نشه چیزی نخواهد دید تا نگردی آشنازین پرده رمزی نشنوی گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش بنابراین مسئله اینجاست که تا این اتفاق نیفته هیچی امکان پذیر نیست خب این چیزی نیست که یک کسی بگه بیا به من نشون بده نه اینطوری این نیست تا اون در باز نکنه تا این حلقه طبق اون قضیه که توضیح دادیم در واقع برقرار نشه اتفاقی هم نمی درست شد یا نه بنابراین میخوایم بهرمند بشیم باید اون حلقه و اون ارتباط برقرار بشه خلاصه کلام ما همینطوری که میریم جلو بررسی آماری داریم مثلا الان میتونیم سوال بکنیم که چند نفر حالا به طور نسبی مسئله براشون حل شده چند نفر؟ دستشونو بلند کنن؟ خب این؟ خب یعنی مسئله این هوشمندی مسئله هوشمندی تا اینجا برای چند نفر حل شده؟ دستشونو بلند کنند خب ما این عده الان چی شد؟ با هم داریم بیحساب میشیم میریم سراغ بقیه جلسه بعد آمار میگیم دوباره یه تعدادی اومدن جلسه بعد جلسه بعد تا آخر جلسه با هم بیحساب میشیم. بفرمایید بفرمایید یه نوتیری می‌خواستم واسط بگم همون دوستمون حق داره با هشت ساعت اومدن سر سا یک جلسه توی شما دارید نتایج تخصص 30 سالتون رو غیر قابل باوره برا به تمام وای دست پیدا میکنه که حق داره که بدونن 100 درصد 100 دست, دست, دست, دست, دست. اینو واقعا شده واسه خیلی از این آقایون و خانمها که نشستن همینجوری باشه غیر قابل باوره چه به نتیجه می‌رسیم یه کاری بخویم انجام بدیم که شما سی سال روش کار کردید. بله و زیاد،, زیاد از حد دور ساده حل میشه قضیه. بله ببینید ما یکی از مشکلاتمون سادگی مسئله است. یکی از بزرگترین مشکلات ما اینه که مسئله ساده است انقدر ساده است که ما قاطی می یعنی ما هنوز بحث نظر رو حتی تا دورای بالا، در نظر بازی ما بی خبران حیرانند بحث نظر رو نمیتونیم توضیح بدیم لذا میگیم که آره رو کاغذ و کاغزه رو اعلام کنو پیرو این حرفا هنوز بحث نظر رو دنیا عرفان اینطوریه بنابراین این ما باید همینجوری قدم به قدم به قضیه نزدیک بشیم نتیجه هممون هست قطعیه ما مردودی نداریم مگر کسی شاهد نشی کسی وارد بشه بگه نیست نیست نیست خب اون طبیعتا چیزی هم درسی پیدا نخواهد کرد ولی وقتی بی طرف هستیم حتما نتیجه داریم مرجودی هم نخواهیم داشت مرجودی در بحث کاربری یعنی ما بتونیم در واقع استفاده بکنیم از اتصالمون به شبکه شعوره کیانی یا هوش جمعیمون خب که حالا اگر لازم شد راجب به هوش جمعی هم من با توضیحات بیشتری خواهم داد خیلی ممنون به صورت از محبتتون خب گفتم متوجه شدم ولی اینکه که میگید که شوره کیهانی مثلا من میخوام تمرکز کنم بگم خدایا کمک کن که بتونم اینو بدم مثلا یه چنین چیزی ببینیم شما شما چی بگید بعد بگیرم بعد چه فکری کشتن شما میبندید خب همین دیگه سختی این قضیه مشکل این قضیه همینه شما میگید چی بگم هیچی نگو هیچی چیزی نگی یه بار هیچی چیزی یه بار بگید یه بار بعد بینید که فرقش چیه اجازه بدین ببینید شما وقتی محقق باشین اینطوری آزمایش می‌کنی یه بار میگیید یه بار نمیگیید بعد ببینید یکیه یکسانه چه بگید چه نگی جام جهان نماست ذمیر منیر دوست اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است وقتی تو اتصال باشین اظهار احتیاج ولی وقتی تو اتصال نباشیم بیرون هستیم باید چیکار کنیم بگیم معلوم کنیم چی میخوایم چی باید اونجا معلوم کنیم ولی اینجا لازم نیست شما چه بگی، چه نگی ارتباط برقرار چه برای خود چه برای دیگران مسئله هست شما هم بفرمایید دیگه رفت به زنگ به زنگ تفریل رسیدیم البته بد نشود نگران نباشین و اینه که این بحث که کردیم واقعیتی که لازمه خب فراده همانگری جز کمال قدرت نیست چرا ؟ به علت به علت اینه که اولا شبکه مصبر انجام میده ثانیه انسان که زمین میخوره انسان زمین میخوره در واقع بعدا متوجه میشین که این زمین خوردن به علت تخلیفات خودمونه اما بزرگتری هست که زیر بقلمونو بگیره بلندمون کنه خوب و این همون به توسط رحمانیت صورت میگیره تعریف شده است حالا شما تعریفشو برخورد میکنید متحده میشین چرا؟ من توضیحات بیشتر بدم خوب یک رو راب... بیشتر